جاناتان مرق دریایی نوشته ریچارد باخ بخش دوم پس بهشت این است بوداش فکر میکرد و به خود لبخند میزد این شایسته نبود در همان لحظه که اوج گرفته و وارد بهشت می‌شد آن را کند و کاف کند در همان حال که بر فراز ابرها و در هماهنگی کامل با دو مرغ ستارگون از زمین فاصله میگرفت دریافت که بدنش مانند آنان نورانی میشود این یک رویداد حقیقی بود همان جاناتان مرغ دریایی جوان بود که همیشه در پس چشمان تلائیش زندگی میکرد اما در ظاهر تغییر شکلی یافته بود بدنش را همچون یک مرغ دریایی حس میکرد اما حالا با تجربه بسیار مهمتر از تجربه بدن فرسودش در پرواز بود او اندیشید آری با نیمی از تلاش پیشین میتوانم دو برابر سرعت بگیرم دو برابر سرعت بهترین پروازهایم در سیاره زمین اکنون پرهایش در نور سپید درخشان تلعلو داشتند و بالهایش چون لایه‌های های نقره کامل و نرم به نظر می رسیدند. با لذت فراوان شروع به شناسای بالهای تازهش کرد با این هدف که به آنها نیرو بخشد در سرعت چهارصد کیلومتر در ساعت احساس کرد که به حد نهایی سرعت پرواز خود نزدیک می شود. در چهارصد و چهل او فکر کرد که به نهایت توانایش در پرواز رسیده است و اندکی احساس نومیدی کرد. در رابطه با توانایی بدن تازهش محدودیتی وجود داشت. گرچه از بالاترین حد پرواز پیشینش بسیار سریعتر می‌پرید. ولی همچنان مرزی وجود داشت که برای شکستن آن تلاش بسیاری لازم بود او اندیشید در بهشت نباید مرزی وجود داشته باشد ابرها از هم گشوده شدند و همراهانش صدا زدند خوش آمدی جاناتان و در هوای لطیف ناپدید شدند او بر فراز دریایی گسترده به سوی ساحلی ناهموار در پرواز بود تعداد اندکی مرغ دریایی بال بالای صخره ها در حرکت بودند در انتهای بخش شمالی در افق چند مرغ دیگر میپریدند دیدگاه های نو افکار تازه و پرسش های نو چرا تعداد مرغان کم است بهش باید پر از فوج های مرغان باشد چرا یک بار اینقدر خسته شده مرگان مرغان نباید در بهشت این گونه خسته و خوابالوط باشند این را کی شنیده بود خاطری زندگیش در زمین داش محو شد زمین جایی بود که او زمانی در آن بسیار آمخته بود به این موضوع اطمینان داشت اما نکته های مهمی هم مطرح بود. نکته هایی درباره جدال به خاطر غذا و مطرود شدن. یک دو جین مرغ در کرانه بدیدارش آمدند کسی سخنی نمی گفت، فقط حس کرد که او را پذیرفتهاند و اینجا را خانه خود احساس کرد. برایش روز بزرگی بود، روزی که سپید دم آن را دیگر به خاطر نمی آورد به سمت ساحل چرخید بالهایش را بر هم زد که در دو نیم نیم سانتیمتری از زمین بیستد بعد از آن سبک بال بر برشنها نشست مرگان دیگر نیز فرود آمدند اما هیچ یک حتی یک پر خود را بر هم نزد آنان با بالهای گسترده در باد شناور بودند بعد از آن قوس به خصوصی به بالهایشان دادند و سرانجام در لحظه ای که پاهایشان زمینی را لمس کرد باز ایستادند. این یک مهار زیبا بود ولی در این زمان جاناتان بیش از آن خسته بود که آن را امتحان کند همانطور که در ساحل ایستاده بود بدون... بدون گفتن کلامی به خواب فرورد در طول روزهایی که سپری شد جاناتان مشاهده کرد که در قیاس با زندگی پیشینش در اینجا چیزهای بسیاری برای یادگیری در باره پرواز وجود دارد با این تفاوت که در اینجا مرغانی وجود دارند که با او هم فکرند برای هریک از آنها بهترین هدف در زندگی رسیدن به کمال و لمس کردن آن بود و این کمال مطلوب در نظرشان پرواز بود همه آنها مرغانی شگفتانگیز بودند هر روز ساعتها به تمرین پرواز و آزمون حرکات دشوار پیشرفت سرگرم بودند برای مدت طولانی جاناتان دنیایی را که از آن آمده بود فراموش کرد مکانی که در آن فوج مرغان با چشمانی کاملا بسته و محروم از شادی پروازیست زیست میکردند و از بالهایشان به منظور یافتن قضا و جنگیدن به خاطران استفاده می‌کردند. اما اکنون آنها برای لحظه ای اینها را به خاطر می آبر. در یک سهرگاه هنگامی که با مربی خود تنها بود گذشته را به خاطر آورد درست زمانی که آنها پس از یک دوره چرخ زدن با بالهای بسته در ساحل آرامیده بودند سالیوان آنها کجا هستند او در سکوت کاملا آشنا با تلپاتی ساده ای که این مرغان به جای, دی... به جای جیغ و داد کشیدن از آن بحر میجستند پرسید چرا تعداد بیشتری از ما اینجا نیستند؟ چرا از جایی که من می آیم؟ هزاران هزار از مرغانی که می شناسم؟ سالیوان سری تکان داد و گفت تنها پاسخی که می شناسم جاناتان این است که در میان یک میلیون پرنده یکی مثل تو پیدا می شود بیشتر ماها خیلی به کندی راه را پیمودیم ما از یک جهان به جهان دیگر شبیه به آن سفر کردیم فراموش کردیم که از کجا آمده ایم اهمیتی ندادیم که به کجا خواهیم رفت در لحظه زیستیم دکر میکنی پیش از آن که برای نخستین بار به این اندیشه که به جز زیستن، خوردن و جنگیدن و یا قدرت یافتن در فوج هدف والاتری هم وجود دارد برسیم چند بار بایستی زندگی کرده باشیم یک هزار زندگی جان ده هزار و آنگاه یک صد زندگی دیگر تا اینکه فراگیریم چیزی به نام کمال وجود دارد و از نو یکصد زندگی دیگر تا اینکه درباره هدف زندگیمان که رسیدن به آن کمال و نشان دادن آن است صاحب اندیشه شویم همان قانون اکنون نیز بر ما حاکم است البته جهان بعدی را از آنچه که در جهان حاضر آموخته ایم انتخاب می کنیم اگر چیزی نیاموزیم جهان بعدی نیز مانند زندگی فعلی من خواهد بود همان محدودیت‌های مشابه و دشواری‌هایی که باید بر آن غلبه کرد بالهایش را گشود و در جهت باد چرخید جان اما تو یک بار آنقدر آمخته ای که نیازی نداری هزاران بار زندگی کنی تا به این مرحله برسی لحظه‌ای بعد آنها دوباره در هوا سرگرم تمرین بودند در جا قلتیدن دشوار بود زیرا در میانه حرکت جاناتان میبایست به وارونه شدن شد. اندیشد انحنای بالش را معکوس کند و این معکوس کردن باید در هماهنگی کامل با حرکات مربی او می بود سالیوان گفت بیا از نو تلاش کنیم بارها و بارها دوباره تلاش کنیم و بعد برای آخر گفت خوب است و تمرین چرخش های بیرونی را آغاز کردند. تا اینکه یک روز عصر مرغهایی که پرواز شبانه نداشتند و روی شنها دور هم گرد آمده و به تفکر مشغول بودند. جاناتان به خود قوت قلب داده و به سمت کوهن مرغ ترین مرغ دریایی که گفته می شد به زودی به فراسوی این جهان میرود گام برداشت. او کمی عصبی گفت چیانک؟ مرغ دریایی که سال با محبت او را نگریست. بله پسرم. افزایش سن به جای آنکه موجب ضعیف شدن مرغ فرزانه شده باشد بر حیبت او افسوده بود او قادر بود از همه مرغان فوج بهتر بپرد به مهارتهایی دست یافته بود که دیگران تنها به تدریج می آنها را فراگیرند. گیرند چیانگ این جهان اصلا بهشت نیست درست است مرغ فرزانه در زیر نور ماه لبخند زد او گفت جاناتان مرغ دریایی دوباره داری یاد میگیری. خوب خب از این به بعد چه اتفاقی می افتد؟ به کجا می رویم؟ آیا مکانی به نام بهشت وجود دارد؟ خیر جاناتان چنین مکانی وجود ندارد بهشت یک مکان نیست و یک زمان هم نیست بهشت یعنی کامل شدن. لحظه ای مکس کرد تو پرنده ای بسیار سریع هستی غیر از این است؟ جاناتان یکی خورد اما سربلند از توجه فرزانه نسبت به خود گفت من من از سرعت لذت می برم تو شروع به لمس کردن بهشت خواهی کرد زمانی که به لمس سرعت کامل یابی جاناتان و این پرواز با سرعت 1600 کیلومتر در ساعت یک میلیون و یا پرواز با سرعت نور نیست زیرا هر عدد یک محدودیت است و کمال محدودیتی ندارد سرعت کامل پسرم یعنی حضور در آنجا چیانگ یک باره به طور غیر ناپدید شد و بر لبه آب پانزده متر آن طرف در پدیدار شد همه اینها در یک لحظه رخ داد سپس دوباره ناپدید شد و در همان زمان یک میلیونیوم ثانیه در کنار جاناتان بود او گفت لذت بخش است جاناتان زده شده بود و فراموش کرد که درباره بهشت بپرسد چطور این کار را میکنی؟ چه احساسی داری؟ چقدر دور میتوانی بروی؟ فرزانه گفت میتوانی به هر مکانی و زمانی که مایلی بروی؟ من به هر زمان و مکانی که فکر کنم میتوانم بروم او به سمت دریان گریست و ادامه داد عجیب است مرغانی که کمال را به خاطر سفر حقیر میشمارد به تدریج نیز به جایی نمی رستند. اما آنهایی که سفر را به خاطر کمال کنار می گذارند، زود به همه جا می رسند. به خاطر داشته باش جانتان بهشت مکان و یا زمان نیست زیرا مکان و زمان خیلی بیمعنا هستند بهشت جانتان مرد دریایی هیجان زده از قلبه بر ناشناخته ای دیگر پرسید می توانی اینگونه پریدن را به من بیاموزی. مطمئنا اگر بخواهی که بیاموزی میخواهم که میتوانیم شروع کنیم همین حالا میتوانیم اگر دوست داریم جانتان گفت دوست دارم این پرواز را فراگیرم و در حالی که پرتوبی غریب در چشمانش میدرخشید گفت به من بگو چه کنم چیانگ به آرامی سخن میگفت و با دقت تمام به چشمان مرغ جوان ترمی پریدن با سرعت تفکر به هر جا که مایلی تو باید فکر کنی که همکنون به آنجا رسیده منظور چیانگ از بیان چنین شگردی برای جاناتان این بود که او از نگریستن به خود به عنوان کسی که اسیر بدن محدود خیش است و با بالهایی به وسط 105 متر در چارچوب معینی آزادی عمل دارد دست بکشد. این شگرد برای دانستن این موضوع بود که طبیعت راستین او در حد کمال یافته ای مانند یک عدد نانوشته در هر مکانی همکنون در فضا و زمان موجودیت دارد جانتان با اشتیاق روزها یکی پس از دیگری به تمرینات خود چسبیده بود او پیش از سپید دم تا بعد از نیمه شب با وجود تلاش زیاد نتوانست حتی به اندازه زخامت یک پر نیز از نقطه‌ای که ایستاده بود حرکت کند. چیانگ بارها به او گفت: اعتقاد را فراموش کن تو نیازی به اعتقاد برای پرواز نداری. نیازی نداری که پرواز را درک کنی. این نیز با همان شگرد انجام می‌گیرد حالا دوباره تلاش کن. سپس یک روز جاناتان در حالی که بر کنار ساحل ایستاده بود و چشمانش را بسته و تمرکز می کرد. در یک لحظه منظور چیانگ را فهمید آری این درست من یک مرغ دریایی نامحدود کامل هستم و لرزشی سخت شادمانه در خود احساس کرد چیانگ در حالی که پیروزی در چشمانش موج میزد گفت خوب است جاناتان دیدگانش رو گشود او و مرغ فرزانه بر کرانه دریایی کاملا دیگرگون تنها ایستاده بودند درختان تا لبه آب سرخم کرده بودند یک زوج خورشید زرد بر فراز سرشان در گردش بودند چیان گفت سرانجام تو اندیشه اصلی را درک کردی اما مهار بدن نیاز به مقداری کار دارد جاناتان حیرت زده به سردرگون بود ما کجا هستیم فرزانه که مطلقا از تاثیر محیط قریب رها بود پرسش او را پاسخ داد آشکار است که ما در سیاره ای هستیم با آسمان سبز و زوج ستارگانی در نقش خورشید جاناتان فریادی از شادی کشید نخستین صدایی که از هنگام ترک زمین از او شنیده میشد عملیست چیان گفت خب مطمئناً عملیست جان همیشه عملیست زمانی که میفهمید چه میکنی حالا درباره مهارت مهار تو زمانی که بازگشتند تاریک شده بود سایر مرغان در حالی که احترام و شگفتی در چشمان تلاییشان موج میزد، جاناتان را مینگریستند. زیرا شاهد بودند که او از جایی که زمانی طولانی در آن ریشه دوانده بود ناپدید شده است دقایقی چند تحنیتهای آنان را تحمل کرد من یک تازه وارد هستم تازه شروع کردم این منم که باید شما بیاموزم سالیوان که نزدیکش ایستاده بود گفت از تو شگفت زده جان. در مقایسه با همه مرغانی که در ده هزار سال گذشته دیده ام تو کمترین ترسی از یادگیری نداری. فوج مرغان در سکوت فرو رفت و جاناتان از خجالت حالت بیقراری داشت. شیان گفت اگر مایل باشی میتوانیم تمرین در زمان را شروع کنیم تا به در گذشته به آینده پرواز کنیم و سرانجام آماده خواهی شد که دشوارترین، قویترین و لذت بخشترین آنها را شروع کنید تو آماده خواهی بود که پرواز به بالا را شروع کنید تا معنای مهربانی و عشق را دریابی یک ماه گذشت و یا مدت زمانی که همچون یک ماه احساس شد و جاناتان با سرعتی باور نکردنی یاد می گرفت. او همیشه با سرعتی بیشتر از تجربه های عادی می آموخت و حالا شاگرد مخصوص مرغ فرزانه اندیشه های تازه را مانند رایانه از جنس پر به سرعت فرا گرفت. با این حال پس از آن روزی فرا رسید که چیانگ ناپدید شد او به آرامی با همه آنها گفتگون می کرد و نصیحت و تشویق می کرد که هرگز از فراگیری و تمرین و کوشش جهت آموختن بیشتر اصول مربوط به سطح ناپیدای زندگی دست نکشند سپس همان گونه که سخن می گفت پرهایش روشن و روشنتر شده و سرانجام آنچنان درخشیدن گرفت که هیچ مرغی دیگر نتوانست به او نگاه کند. او گفت جاناتان. و این آخرین کلماتی بودند که بر زبان می آبرد. در راه عشق عمل کن. زمانی که دوباره توان نگاه کردن را یافتند چیان رفته بود؟ همچنان که روزها سپری می شدند جاناان خویشتن را در حال تفکر درباره زمان و نیز زمینی که از آن آمده بود یافت. اگر او در آنجا فقط یک دهم ده یا یکصدم از آنچه که در اینجا پیبرد فهمیده بود زندگیش در روی زمین چقدر پر معناته میشد. او بر شن بود و در شگفت بود که آیا مرقی هم در آنجا هست که به خاطر شکستن محدودیت های خود تلاش کند مرغی که در وراء سفر به خاطر کسب تکی نان از یک کرجی مفهوم پرواز را نیز ببیند شاید حتی مرغ دیگری نیز وجود داشت که خود را آماده می کرد در حضور فوج خود از حقیقت سخن بگوید و هرچه بیشتر جاناتان درس مه ورزی را تمرین می کرد بیشتر مایل می شد که به زمین بازگردد زیرا با وجود گذشته تنهایش جاناتان مرغ دریایی یک مربی به دنیا آمده بود و روش او برای نشان دادن عشق این بود که بخشی از حقیقتی را که خود دیده بود به مرقی ببخشد که در جستجوی دیدن آن بود سالیبان که هماکنون در پرواز با سرعت تفکر ورزیده به کارآمد شده بود و به دیگران در یادگیری کمک می کرد مردد بود جان تو زمانی تبعیدی بوده ای؟ چگونه فکر می کنی که در زمان گذشته تو میزیستند اکنون به حرفهای تو گوش فرا خواهند داد؟ تو این ذربول مسأله را که حالا صدق می‌کند می‌دانی مرقی که بالاتر می پرد دورتر را میبیند. آن مرغانی که تو از میانشان آمده ای بر زمین استادند و با هم جدال می‌کنند آنها هزاران فرسنگ از بهش دورند و تو می‌گویی که می‌خواهی از آنجا که ایستادهاند بهش را به آنان نشان دهی جاناتان آنها حتی قادر نیستند نوک پرهای خود را ببینند اینجا بمان و به مرغهای جدید کمک کن به آنان که آنقدر والا هستند که میتوانند چیزی را که به آنها میگویی ببینند او برای لحظه سکوت کرد و سپس ادامه داد اگر چیان که به جهانهای پیشین خود بازگشته بود تو امروز کجا بودی؟ سخن آخر سخن گویایی بود و سالیوان حق داشت مرقی دورتر را میبیند که بلندتر بپر جاناتان آنجا ماند و با پرنده های که می آمدند کار می کرد. آنها همگی در دروس خود بسیار درخشان و سریع بودند اما آن حس قدیمی دوباره بازگشت و او نمی جلوی این فکر را بگیرد که شاید آنجا روی زمین یکی دو مرغ وجود دارند که آنها نیز قادر به فراگیری هستند چقدر بیشتر می توانست بیاموزد اگر چیانگ آن روزهایی را که او ترد شده بود نزدش می آمد. سر انجام گفت. سالی من باید برگردم. شاگردانت بسیار خوب پیشرفت میکنند. آنها میتوانند به تو در جهت همراهی تازه واردها کمک کنند. سالیوان آهی کشی و دیگر سخنانش را دنبال نکرد. فکر میکنم دلم برای تنگ بشود جاناتان. تنها چیزی که گفت همین بود. جاناتان در پاسخ گفت سالی خجالت آور از کودن نباش هر روزه در تلاش تمرین چه چیزی هستیم اگر دوستی ما به چیزهای مانند فضا و زمان بستگی دارد پس زمانی که در نهایت بر فضا و زمان غلبه کردیم برادری خود را نابود کردیم اما قلبه بر فضا و آنچه که پشت سرگذاشته این اینجاست قلبه بر زمان و همه آنچه که ترک کرده ای همین حالاست و در خارج از اینجا و حالا فکر نمی کنی که ممکن است یکی دو بار همدیگر را ببینیم. سالیوان مرغ دریایی با خود خندید. به مهربانی گفت ای مرغ دیوانه اگر کسی به به فردی بر روی زمین طریقه دیدن 1600 کیلومتر دیگر را نشان دهد آن کس جاناتان لیوینگستون مرغ دریایی خواهد بود. او به شان ها خداحافظ جان دوست من. حافظ سالی ما دوباره یکدیگر را خواهیم دید و بعد از آن جاناتان در ذهنش تصویر فوج بزرگی از مرغان در ساحل را در زمان دیگری فراخواند. با نیروی تمرین می که تنها استخوان و پر نیست بلکه نمودی کامل از آزادی عمل و پرواز است که با هیچ چیز دیگری محدود شدنی نیست فلچرلیند هنوز خیلی جوان بود اما میدانست که تاکنون هیچ پرنده‌ای با چنین رفتار سخت و غیر ای توسط هیچ فوجی مواجه نشده است با آزردگی اندیشید من به آنچه که آنها میگویند اهمیتی نمی نمیدهم و در همان حال با تصوری مبهم به سوی صخره های دوردست پرگشود در پرواز به غیر از رفتن از یک مکان به مکان دیگر ارزش بیشتری نهفته نه است یک پشه هم این کار را انجام می دهد یک چرخش کوچک سری در اطراف مرغ سال خورده فقط برای تفریح موجب شد ترد شود. آیا آنها کورند؟ نمی توانند ببینند؟ نمی توانند شکوه مندی دورانی را که ما واقعا یاد می گیریم، پرواز کنیم ببینند؟ اهمیتی به آنچه که فکر می کنن نمی دهم به آنها نشان می دهم که پرواز چیست من یک توقیانگره تمام ایار خواهم بود اگر این چیزی است که آنها می خواهند و من کاری می کنم که واقعا افسوس می خورم. صدایی در ذهنش پیچید گرچه خیلی نرم و آرام بود اما او را تکان داد به حدی که تعدلش را در هوا از دست داد فلچر مرغ دریایی آنان سخت مگی با ترد تو مرغان دیگر فقط به خودشان ستم میزنند و روزی آنان این را میفهمند و روزی آنان آنچه را که تو دیدی میبینند آنها را ببخش کمکشان کن که بفهمند در فاصله دونیم سانتی متری از نوک بال راستش درخشانترین ترین مرغ سپیدی که در جهان یافت میشد پرواز می کرد که بی تلاش همراهش می پرید در حالی که در بالاترین سطح پرواز فلچر میپرید حتی یک پر او تکان نمی خورد. مرغ جوان لحظه آشفته شد. چه خبر است؟ آیا دیوانه شدم؟ آیا مردم؟ این چیست؟ صدایی به آرامی در ذهنش پیچید که در انتظار پاسخی بود. فلچرلیند مرغ دریایی آیا میخواهی پرواز کنی؟ بله میخواهم پرواز کنم. فلچرلیند مرغ دریایی آیا میخواهی آنچنان پرواز کنی که فوج مرغان را ببخشایی و بیاموزی که روزی به سوی آنها بازگردی و به آنها کمک کنی که بدانند؟ هیچکونه ریاکاری در این موجود کار و خارال وجود نداشت و به علاوه اصلا مهم نبود که فلچر مرغ دریایی در چند از احساس غرور و یا دلازوردگی دارد. او به آرامی می گفت همین کار را می کنم. پس فلچ آن موجود رخشان با لحنی بسیار پرمهر به او گفت یا با پرواز در سطح شروع کنی.